فصل دوازدهم. در آن زمان عیسی در یک روز سبت از میان مزاره گندم میگذشت و چون شاگردان گرسنه بودند شروع به چیدن خوشهای گندم و خوردن آنها کردند فریسیان این را دیده به او گفتند نگاه کن شاگردان تو کاری می‌کنند که در روز سبت جایز نیست او در جواب فرمود آیا شما آنچرا که داوود وقتی خودش و یارانش گرسنه نبودن انجام داد نخوانده اید؟ چگونه او به خانه خدا وارد شد و نانهای تقدیز شده را خورد حالان که خوردن آن نانها هم برای او و هم برای یارانش ممنوع بود و فقط کاهنان اجازه خوردن آن را داشتند؟ آیا در تورات نخوانده اید که کاهنان با اینکه در روز سبت در معبد مقدس قانون سبت را میشکنند مقصر نیستند بدانید که شخصی بزرگتر از معبد در اینجاست اگر شما معنی این جمله را میدانستید که میگوید رحمت میخواهم نه قربانی افراد بیگناه را محکوم نمیکردید، زیرا پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است. پس از آن عیسی به شهر دیگری رفت و به وارد شد. مردی در آنجا بود که یک دستش خوش شده بود. عده‌ای از حاضرین از عیسی سوال کردند: آیا شفا دادن در روز سبت جایز است؟ البته مقصود آنها این بود که اتهامی علیه او پیدا کنند. اما عیسی به ایشان فرمود فرض کنید که یکی از شما گوسفندی دارد که در روز سبت به گودالی میافتد آیا آن گوسفند را نمیگیرد و از گودال بیرون نمیآورد مگر انسان از گوسفند به مراتب عزیزتر نیست بنابراین انجام کارهای نیکو در روز سبت جایز است پس عیسی به آن مرد رو کرده فرمود دستت را دراز کن. او دست خود را دراز کرد و مانند دست دیگرش سالم شد. آنگاه فریسیان از کنیسه بیرون رفتند و برای کشتن عیسی توته چیدند اما وقتی عیسی از ماجرا باخبر شد، آنجا را ترک کرد. ولی جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و او همه بیماران را شفا بخشید. و با آنها دستور داد که درباره او به کسی صحبت نکنند. تا به این وسیله پیشگوی اشعای نبی تحقق یابد که میفرماید این است بنده من که او را برگزیدم، او محبوب و مایه شادی من است. او را از روح خود سرشار خواهم ساخت و او ملت را، از کیفر الهی آگاه خواهد نید. او با کسی ستیزه نمی کند و فریاد نمی زند. و کسی صدای او را در کوچه ها نخواهد شنید. نه خمیده را نخواهد شکست و فتیله نیم را خاموش نخواهد کرد. و خواهد کشید تا ادالت پیروز شود. او مایه امید تمام ملتها خواهد. در این وقت مردم شخصی را پیش او آوردند که دیوانه و کور و لال بود و عیسی او را شفا داد به طوری که او می توانست هم حرف بزند و هم ببیند. مردم همه تعجب کرده می آیا این فرزند داوود نیست؟ اما وقتی فریسیان این را شنیدند گفتند این مرد به کمک بعلزبور رئیس شیاطین دیوها را بیرون می کند. ایسا که از افکار ایشان آگاه بود بانان گفت هر کشوری که به دستهای مخالف تقسیم شود رو به خرابی خواهد گذاشت و هر شهر یا خانهی که به دستهای مخالف تقسیم گردد دوام نخواهد آورد. و اگر شیطان شیطان را بیرون کند و علیه خود تجزیه شود حکومت او چگونه پایدار بماند؟ و اگر من به کمک دیو دیوها را بیرون می کنم، فرزندان شما با کمک چه کسی آنها را بیرون می آنها درباره حرف حرفای شما قضاوت خواهند کرد. اما اگر من به وسیله روح خدا دیوها را بیرون می کنم، این نشان می دهد که پادشاه خدا به شما نزدیک شده است. یا چگونه کسی می تواند؟ به خانه مرد زورمندی وارد شود و اموال او را تاراج کند، جز آنکه اول دست و پای آن مرد را ببندد و آن وقت خانه او را غارت کند. هر که با من نیست برخلاف من است و هر که با من جمع نمی کند پراکنده می‌سازد. پس بدانید که هر نوع گناه یا کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است، بجز، کفری که علیه روح القدس بگوی. این کف آمرزیده نخواهد شد. هرکس کس علیه پسر انسان سخنی بگوید آمرزیده خواهد شد. اما برای کسی که علیه روح القدس سخن بگوید، هیچ آمرزشی نیست. نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. اگر میوه خوب میخواهید، درخت شما باید خوب باشد. زیرا درخت بد میوه بد به بار خواهد آورد چون که درخت را از میوهش می شناسن. ای مارها شما که آدم شریری هستید چگونه می توانید سخنان خوب بگویید زیرا زبان از آنچه دل را پرساخته است سخن می گوید. مرد نیکو از خزانه نیکوی درون خیش نیکی و مرد بد از خزانه بد درون خود بدی به بار بدانید که در روز داوری همه مردم باید جواب هر سخن ای که گفتند را بدهند زیرا بر طبق سخن خود یا تبرعه خواهی شد و یا محکوم در این وقت دهی از ملایان یهود و فریسیان به عیسی گفتند ای استاد می خواهیم آیتی به ما نشان بدهیم او جواب داد فرقه شریر و بیوفا آیتی میخواهند و تنها آیتی که با آنها داده خواهد شد آیت یونس نبی است. همانطور که یونس سه روز و سه شب در شکم یک ماهی بزرگ ماند، پسر نیست سه شبان روز در دل زمین خواهد ماند. در روز داوری مردم نینوا برمی‌خیزند و مردم این زمانه را محکوم می کنن. زیرا مردم نینوا وقتی موعظه یونس را شنیدن توبه کردند حالانکه که شخصی که در اینجاست از یونس بزرگتر است ملکی جنوب نیز در روز داوری برخواسته مردم این زمانه را محکوم خواهد ساخت زیرا او از دورترین نقطه جهان آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و حال که شخصی که در اینجاست از سلیمان بزرگتر است وقتی روح پلید از شخصی بیرون میآید برای پیدا کردن جای راحت در بیابان‌های خشک و بیااب سرگردان می شود و چون نمییابد با خود می گوید به خانه ای که آن را ترک کردن برمیگردند. پس بر می گردن و آن خانه را خالی و جارو شده و منظم و مرتب می بینن. آنگاه میرود و هفت روح شریتر از خود را جمع می کند، و میآورد و آنها همه آمده در آنجا ساکن می و عاقبت آن شخص از اولش بدتر می شود. و از مردم شریر این زمانه هم همینطور خواهد بود. ایسا هنوز مشغول صحبت بود که مادر و برادرانش آمدن و در بیرون ایستاده می خواستن با او گفتگو کنند. پس شخصی به او گفت مادر و برادرانت بیرون ایستاده و میخواهند با تو صحبت کنند. ایسو گفت مادر من کیست برادرانم کیانند و به شاگردان خود اشاره کرده فرمود اینها مادر و برادران من هستند هر که اراده پدر آسمانی مرا انجام دهد برادر من خواهر من و مادر من است